بسم الله الرحمن الرحيم فصل اركان الصلاة فصل بعدي در موضوع اركان نماز بله شرایط که قبلن خوندیم اون چیزی که خارج هست نماز اما رکن داخل در حقیقت نماز و الارکان و اركان الصلاة ثمانية عشر رکن اركان نماز هجده تا رکن باشند یک انیته نیت کردن 2 و مع القدره ایستادن البته هم اگر توانایی داشته باشه سه و تکبیره الاحرام تکبیر احرام منت اول که بهش میگن تکبیر احرام چون بسیاری از مایلص نصایل دیگه حرام میشه و قرائت الفاتحه تي. خاندن الحمد و بسم الله الرحمن الرحیم آیتم منها این نقطه رو بیان میکنه که و بسم الله هم آیه ای از فاتحه هست ببینید در مذهب شوافه فاتحه رکن هست و بسم الله هم آیه ای از فاتحه هست پنج و رکوع پنج من رکن نماز رکوع میباشد شش و طمانین توفیح آرامش در رکو که رکو کرد نگه دارد آرام بگیرد و رفع و الاعتدال رکن هفتم بالا رفتن از رکو و اعتدال در این ایسادن آه هنوز کمرش راست نشده که طرف میره بسجده این درست نیست باید بره بالا و اعتدال داشته باشه یعنی تمام اعضا جاشون برن در این ایسادن و الطمأنينة فيه و آرام گرفتن آرامش در این اعتدال و سجود کردن و طمأنینه فيه آرامش گرفتن در سجده و الجلوس بین السجدتين نشستن بین دو سجده هم رکن است و طمأنینه فيه و آرامش در این آر نشست بگذار خوب بنشینه آرامش گرفتن یعنی این کارو به زبان ساده ساده خوب انجام بگیره نه اینکه که به محض انجام دادن فوراً بر بگرده والجلوس الاخير و سیزدهمین همین رکن نشست سن آخریست در رمازه چارکتی و تشهد و فیه تشهد در آن و 15 از على النبي صلی الله عليه وسلم بعد جلوس اخیر در تمام نمازه میشه در دو یا بعد از دو جلوس اخیر و در چار رکت یا در بعد از رکت چارمه بعدن تشهد در جلوس اخیر هم جز ارکان هست پانزه و على النبي صلی الله عليه وسلم فيه درود بر پیامبر صلی الله علیه وسلم در این تشهد یعنی بعد از تشهد درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بخونه که و ارکان است 16 <تصفح> والتسلیمه الاولى سلام اولی جزء ارکان است 17 و نیت الخروج من الصلاه نیت خارج شدن از نماز ببینید این نیت البته اکثر جز و ارکان ندونستن نیت خروج از نماز سلام که میده دیگه خلاص و هجده ترتیب على ما ذکرناه هجده ركن رکن ترتیب طبق اونچه که ذکر شد بله در مذهب شافیه ارکان به مراتب از مذهب احناف بیشتر هستند و نماز به این شکل آرامتر خونده میشه و اون هدف از نماز هم بهتر اجرا میشه فاصلون سنن و صلاتی و حیعتها سنت های نماز و هیات های نماز ببینید سنت ها اونای هستند که اگر طرف اونا رو انجام نداد سجده صحب سرش لازم میشه ارکان اونای بودند که اگر طرف ترکشون کرد نمازش نمیشه بعدونو انجام بده. صنن که اگر ترکش کرد سجده سه انجام بده. اما حیات نه برای حیاتی که چیزی نیاز نیست. و صنن ها، بسال ما صننهای نماز و حیات نماز رو می‌خوایم. و صنن ها قبل دخولی فیها شیان. صننهای نماز قبل از داخل شدن در نماز دو چیز هستند یک ال اذان و الاقامه. اذان و اقامه. و بعد دخولی فیها شیان و بعد از داخل شدن در نماز دو چیز هستند. يك التشهد الأول دو والقنوت في الصبحي وفي الوطري في النصف الثاني من شهر رمضان دو چيز جوز سناني نماز هستند وكاگر انساني نارو تركب تبقى مذهب بعد سجده صحفا جامل يك تشهد أولي چون تشهد دو رمي أركان بود دو قنوت، هم در صبح جوز و طبق مذهب جمهور فقه یعنی شوافه و محنفیه و مالکیه و حنبلیه و مذاهب دیگر قنوت در صبح جزو سنن نمیدونند قنوت نازله میگن این قنوطی که فیغمبر خونده قنوت نازله بوده نه قنوت صبح یعنی مخصوص برای نماز صبح خب قول جمهور خویی تر است اما ما عباره حل می کنیم و تفصیل نمی و فی الوطر جای دیگه که طبق مذهب واجب است در نماز وتر در نصف دوفوم از شهر رمزان بله طبق مذهب امام بزرگوار امام شافعی رحمت الله علیه وتر در نیمه دوفوم رمزان سنت هست و خلاص والبتاة ده رويات رتشيخون ده اللهم اهدني في من هدت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ها إنو البتاة شوافميان اگر امام خون با سیغه جمع بخونه مثلا به چه شکل اللهم مهدینی اینجا دیگه مفرده ها کسی که تنها نماز میخونه اینو میگه هر وردگار هدایت کن ولی میگه اگر امام بود اینجوری بخونه اللهم مهدنا فی من وعافنا و فی من سنت که با سیغه جمع بخونه و شوافع البته رفولیدن رو هم هنگام این دعا سنت میدونن یعنی دست رو بالا کردن و کف دو دست هم به سمت میگن آسمان باشه کف پشت دست و میگن ظاهر کف این جایی که میگیریم باشه غذا میخوریم این ته دست و میگن باطن کف خب. و حیعتها 15 عشر خصله های نماز پانزه تا میباشن رفعال یدینی این در تکبیر احرام رفع یدین کردن هنگام تکبیرت الاحرام گفتن و این الرکوع هنگام رکوع رفتن و رفع من و هنگام از رکوع بالا رفتن اینجا رفع یدین جزء حیات نمازه دو و وضع الیمینی الاشمال گذاشتنی راست بر برچپ همجز هیات نمازه و توجه بله قبل از فاتحه یه دعای رو میخونند بهش استفتاح میگن بهش توجه میگن البته این علت داره استفتاح و توجهه خب شوافه أكسراً إنهم يخوناً وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وجهت وجهي أه؟ بخاطرين بش مجان توجه ينروي خدم را قرداني دم بسمت عن ذاتك آسمان وزنين را أز ابتداء فريد خب بس توجه یا همون دعای استفتاح البته هر دعایی که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ثابت است را میشه خواند بس توجه را خوندن قبل از فاتحه جزء هیئت نماز 4مین هیئت و الاستعاذة اعوذ بالله گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 5 الجهرو فی موضعه جهری خواندن در جایش اون جاهای جاهایی که باید نماز جهری خونده بشه با صدای بلند خونده بشه اونجا جهری خواندن سر جای خودش یعنی در دو اول مثلا مغرب در دو در اول عشاء در دو در صبح در دو در اینجوری میگه جهری خواندن هم حیات اعات والاصرار فی موضعه سری خاندن هم سر اون جایی که سری سر خونده بشه جز حیات نمازه پس اون که جهری خانده بشه جر خواندن جز حیات است و اون جایی که سری خانده بشه سری خاندن جز حیات است. و تأمین و آمین را گفتن بله شوافه آمین رو با صدای جهر میگند و قراءت و صورتی بعد الفاتحه خاندن سوره بعد از فاتحه جز حیات هست خود فاتحه جز ارکان بود و التکبیراتو عند الرفع والخافضو تکبیر گفتنها هنگام بالا رفتنها و پایین رفتنها یعنی هنگام که شما به رکوم میری از رکومی بالا البته از رکومی بالا سمع الله لمن حمده میگی ولی جاهای دیگه مثلا مثل رفتن به سجده از سجده بلند شدن دوباره رفتن به سجده اینا رو میگن خفض و رفبه پس تکبیر گفتن هنگام بالا رفتن و پایین رفتن ده و قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد همشنين گفتن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد این چه زمانه؟ این زمانی که از رکو میریم بالا دیگه وگرنه بالا رفتن ها و پایین رفتن های دیگر با تکبیر هستند اما از رکو که بریم بالا اینجا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد گفته میشه 11 و التسبیح فی رکو. 11 من هیئات تسبيح در ركوم يواشد يعني سبحان ربي العظيم س... سمرتبش سبحان ربي العظيم در ركوم بيجه والسجود و در سجده هم تسبيح بيجه در سجده ميجه سبحان ربي العظيم سمرتبه اين ادرايشي البته دوازده من حيئة وضع اليدين على الفخذين في الجلوس قرار دادن الدودست بر رانهاش در نشستن یعنی نشستن دوتتا شهدا. یا بسطولیوسرا و یقبیدولیمنا دست چپش رو بست میکنه اونجوری پهنه و دست چپ رو قبض میکنه چرا؟ الا المسبحه جز انگشت مسبحه همونی که باش اشاره میکنه زمانی که شهادتی خوند زمانی که اشهدو ان لا اله الا الله اونجا پس دست چه پیش رو پهن میکنه راس رو قبض میکنه جز انگشت اشاره را که در حالت تشهد منظور اشهدو ان لا اله الا الله اونجا باش اشاره میکنه التحیات خود البته میگن هنگامی که الله رو گفت اینجا تفصیلاتی فقه ها آوردند سیزده همین هیئت والافتراش فی جمعی الجلسات افتراش در تمام جلسات یعنی شما مثلا برای تشهد نشستی. در تشهد اول به شکل افتراش میگه نشستان هیئت است افتراش چیه این است که شخص میاد می نشینه بر روی پای چپش و پای راستش رو، قدم را پای راستش رو نسب میکنه و انگشتای پایش رو هم به سمت پای راسش رو به سمت قبل قرار میده. همین نی که خلاصه خودتون عملی دیگه دیدید دی دی دی اینجا ما صوتی توضیح میدیم و نمیشه واقعا تصویری نشونش داد. چهارده، چهارده التورق في الجلسة الأخيرة. میگه تورک حیعت هست از حیعت نماز در نشستن آخری این دیگه چه هست؟ بله این مثل همون نشستن عادی فرقش اینه که شما در افتراش روی پای چپ می نشید. اینجا نه اینجا قدم پای راست و از زیر پا... قدم پای چپ و از زیر پای راست که نصف هست قدمش نصب هستی جای خالی هست همونجا قدم پای چپو از این کنار قدم پای راست رد میکنی کنون که دیده میشه از عدبا. اینو میگن تورک پس افتراش و تورکو توضیح دادیم افتراش شما روی پای چپ مینشینید پای راست قدمش نصب میشه ولی در تورک نه در تورک شما پای چپت رو خارج میکنی از زیر پای راست و بر ورک پای چپ مینیشنی بر قدمش ندیگه بر ورک شما نشی منگاهی که هست پانزده یعنی 15 همین حیعت التسليمه الثانيه سلام دادن دومی سلام دادن دومی جزء هیئت های نمازه سلام دادن اولی جز ارکان بود بله تا اینجا کافی است موفق و مایت